de va گفتن حالا از چی ببین سونیه رو شمردن رسید وقتی چه کمه احساس من تبدیل شد به خوزه گفت بعد بیا تقدیر گفت به چنهای لعنتی منویاتو یاد من داد صبر بدی هر کسی میرسه به فرد معلم ارشا گفت علم یا سر و بهش بگو هیچ گوم فقط نباشه ملت زیک یاد من داد چطوری باشم قوی قاعده آدمو یه چیز فقط برتری برد زیبایی بینایی منطقیت بباچه هر تو تاکنی هم دو تربیت میشه یه دوز بالاخره به بار دز میاد جوونی مثل من خب یه کارو مز میخوا دیگه عادت شده به مافق فروختن تو آتیش حقارت چه سخت سوختن به محض دوختن دل به کسی باید آماده کنی خودت تو باسه باید م باشه واسه زخمان واسه من همین کافیه که شب ها با قلم و کاغذ منوس بشم دست به دعا برمی دارم وقتی مایوس بشم معلوم نیست که من تو کی زنده هستم به راه چش به در منتظر نشسته اپه هستی که اپی هر از, طا... طا... از طا... طا... طا... طا... تو چه طا... طا... طا... طا... کی... این زندگی یه بی حال تو چه تو چرا نتون سو چه تو چه این بزن سو چه چاره سینا بتاو بسو جاه نادور پز یه جوون این زندگی صح نادور از دست سوار تن منته و دوشت تو وقتی خط صاف. میکشن می‌کشند و نوارق دفتر نقاشی بچگی هم نداره نقشی جو زبر بارون و توفان با و آدمای وحش چون من چیه چون که خیلی سریع پسری مجازاتم کنی نه سریع مگر خدا بدونه تو شاهدی و منم شائرا مخدوقات تو این دنیا پی حفز ظاهره جناب سرون جرمم چیه نداره الکل پوشتم گرم بشه به جای جزء میلگ Dan don't a tasi bo it'll dig hat from tua ما چه در حال هر کاریم، افتم سوس داره، ها؟ به سوس چون منم سوخته، دست های بی رقت و اونو پشت سرم دوخته، بسار وحش بگه، تو دنیامو دو چیز هست یکی خدا و یکی هم حیوانای پستی که بحث نمیخوام بحث و مذهبی کنه، حس قلم و یه کوغسو که مشناس رو دوره، حسی دارم به خاطر شوهرم بسته شده، ولی به کسی نمیزنه بواسطه غیر از قلب خودم ازوم مدوم و از زمان صفر، خوش به نیویورک جهان سوپر سات اوغری کردم تو چه این زندگی یه پی حالا تو چه اون توی هرگنم تو چه روح توییم بزنه تو چه ناز سینه‌مت <متحدث> رو بسو تو چه این زدن دمهامون به انتظار تو چه خوشی هامون به شکله بد تو چه آیا کسی هو چسی ها نقطه سال